از خداوند ولی و توفیق درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان وخامت ضررهای بی از خدا جوییم توفیق ادب بی محروم گشت از لطف رب بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد مایده از آسمان در می رسید بی و بیع و بی گفت و شنید در میان قوم موسا چند کس بی ادب گفتند کوسی رو عدس منقطع شد خان و نان از آسمان، ماند رنج زر و بیل و داسمان. باز ایسا چون شفاعت کرد، حق خان فرستاد و قنیمت بر طبق، باز گستاخان ادب بگذاشتند. چون گدایان زلها برداشتند لابه کرده ایسیشان را که این دایم است و کم نگردد از زمین بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیچ خان مهتری زان گدارویان نادید زعاز آن در رحمت برایشان شد فراز ابر برناید پی من زکات و زنا افتد وباان در جهات هرچه بر تو آید از ظلمات و غم آنز بیباکی و گستاخیست هم هرکه بیباکی کند در راه دوست رهزن مردان شد و نامرد اوست از ادب پرنور گشتاستین فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک بود ز گستاخی کسوف آفتاب شد عزازیلی از ز جرعت رد با